مصنویه معنویه مولوی برنامه 167 برنامه معاخزه یوسف صدیق علیه السلام به حبس سنین به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن ازکرنی اند ربک ما تقریره انچنان که یوسف از زندانیه با نیاز خاضع سعدانی خواست یاری گفت چون بیرون روی پیش شه گردت امورت مستوی یاد من کن پیش تخت آن عزیز تا مرا هم واخرت حبس نیز. کی دهد زندانی در اقتناس مرد زندانی دیگر را خلاص اهل دنیا جملگان زندانییاند انتظار مرگ دار فانییاند جز مگر نادر یکی فردانیه تن به زندان جان او کیبانیه پس جزای آن که دید او را معین ماند یوسف حبس در بزع سنین. یاد یوسف دیو از اقلش سطرد، و دیو آن سخن از یاد برد. زین گناه که از آن نیک و خسال، ماند در زندان زدابر چند سال که چه تقصیر آمد از خورشید داد تا تو چون خفاش افتی در سباد هین چه تقصیر آمد از بحر و صحاب تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب آم اگر خفاش تب اند و مجاز یوسفا داری تو آخر چشم باز گر خفاش رفت در کور و کبود باز سلطان دیده را بار چه بود؟ پس ادب کردش بدین جرم اوستاد که مساز از چوب پوسیده بوسیدهما لیک یوسف را به خود مشغول کرد تا نیاید در دلش زان درد آنچنانش انسو مستی داد حق که نه زندان ماند پیشش نه غسق نیست زندان وحشتر از رحم ناخش و تاریک و پرخون و بخم چون گشادت حق دریچه سوی خیش در رحم هردم فضایت تند بیش اندران زندان ززاق بیقیاس خوش کفت از غرس جسم تو هواس زنده بیرون شدن بر تو درشت می گریزی از زهرش سوی پاشت پشت راه لذت از درون دان نز برون جستن قصر و حسون آن یکی در کنج مسجد مست و شاد باندگر در باغ ترش و بی مراد قصر چیز نیست و ایران کن بدن گنج در ویرانی است ای میر من این نمی بینی که در بزم شراب مست آنگه خوش شود که خراب. گرچه پر است خانه برکنش گنج جو وزگنج آبادان کنش خانه پر نقش تصویر و خیال وین چون پرده برگنج گنج و سال پرتو گنج است تابش های زر که در این سینه همه جوشد سور هم ز لطف و عقس آب باشرف پرده شد بر روی آب اجزای کف هم ز لطف و جوش جان با سمن پرده بر روی جان شد شخص تن پس مثل بشناو که در افوا خواست کانچه بر ماست ای برادر همز ماست زین هجاب این تشنگان کف است زاب صافی افتاده دور دست. آفتابا با چوتو و امیم شب و خفاشی می کنیم سوی خود کن این خفاشان را متار زین خفاشیشان بخر ای مستجار این جوان زین جرم زال است و مغیر که به من آمد ولی او را مگیر در اماد الملک این اندیشه ها گشته جوشان چون اصد در بیشه ها ایستاده پیش سلطان ظاهرش در ریاض غیب جان تایرش چون ملایک او به اقلیم علاست، هر دمی می شد به شرب تازه مست، اندرون اون سور و برون چون پرغمه، در تن همچون لحد خوش آلمه. او در این حیرت بد و در انتظار، تا چه پیدا آید از غیب و سرار؟ اسب را اندر کشیدند آن زمان پیش خارم خارمشاه سرهنگان کشان الحق اندر زیر این چرخ کبود بود آنچنان کره قد و تگ نبود میره بودی رنگ او هر دیده را مرحبان از برق و مه زاییده را همچون مه همچون اتارد تیز رو گوییا سرسر سر علف بودش نجو ماه ارسه آسمان را در شبه می برد اندر مسیر و مذهبه چون به یک شب مه برید ابراج را از چه منکر می شوی مراج را صد چو هست آن عجب در یتیم که به یک ایمای او شد مه دنیم آن عجب کو در شکاف مه هم به قدر زعف حس خلق بود کاروبار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون تو برون رو هم ز افلاک و دوار وانگهان نزاره کن آن کاروبار در میان بیزه چون فرخ ها نشنوی تسبیح مرغان هوا موجزات اینجا نخواهد شرح گشت زسب و خارمشاه گووو سرگذشت آفتاب لطف حق بر هرچه تافت از سگ و از اسب فر کهف یافت تابه لطفش را تو یکسان هم مدان سنگ را و لعل را داد اونشان لعل رازان هست گنج مقتبس سنگ را گرمی و تابانی و بس آنکه بر دیوار افتد آفتاب آنچنان نبود کذاب و استراب چون حیران شد از وی شاه فرد روی خود سوی عمادالملک کرد. کی اچی بس خوب اصبه نیست این، از بهشت است این مگر نه از زمین. پس اماد گفتش ای او. چون فرشته گردد از میل تو دیو، در نظر آن چابری گردید نیک، بسگش و رعناست این مرکب، ولیک هست ناقص آن سران در پیکرش، چون سر گاو است گویی آن سرش. در دل خارم شه، این دم کار کرد، اسب را در منظر شه، خار کرد. چون غرض دلاله و واصفه، از سگز کرباس یابی یوسفه. چونکه هنگام فراق جان شود، دیو دلال در ایمان شود. پس فروشد ابله ایمان را شتاب، اندران تنگی، با یک آب بان خیال باشد و ابریق نی قصد آن دلال جز تخریق نی این زمان که تو صحیح و فربهی، صدق را بهر خیال میدهی، دهی می فروشی هر زمان در همچو تفل میستانی گردکان پس در آن رنجوری روز عجل نیست نادر گربود اینت عمل در خیالت صورت جوشیده همچو جوز وقت دق پوسیده هست از آغاز چون بدر آن خیال، لیک آخر می شود همچون هلال. گر تو اول بنگری چون آخرش، فارق آیی از فریب فاترش. جوز پوسیده است دنیا، ای امین. امتحانش کم کن، از دورش ببین، شاه دید آن اسب را با چشم حال، وان اماد الملک با چشم معال. چشم شه دو گز همی دید از لغز، چشم آن پایان نگر پنجاه گز. آن چه سرمست آن که یزدان می کشد؟ کس پس صد پرده بیند جان رشد. چشم مهتر چون به آخر بود جفت، پس بدان دیده جهان را جیفه گفت. زین یکی زمش که بشنود و حسب، پس فسرد اندر دل شه مهر اسب. چشم خود بگذاشت و چشم او گزید. هوش خود بگذاشت و قول او شنید. این بهانه بود و آن دیان فرد از نیاز آن در دل شاه سرد کرد. در ببست از حسن او پیش بسر، آن سخن بود در میان چون بانگ در. پرده کرد آن را بر چشم شه که از آن پرده نماید ماه سیه. پاک بنایی که برسازد حسون در جهان غیب از گفت و فسون، بانگ دردان گفت را از قصر راز تا که بانگ وا شد است این یا فراز بانگ در محسوس و در از حس برون تبسرون این بانگ و در لا تبسرون چنگ حکمت چونکه خوش آواز شد تا چه در از روز جنت باز شد بانگ گفته بعد چو دروا می شود از سقر تا خود چه دروا می شود بانگ در بشنو چو دوری از درش ای خنک او را که باشد منظرش چون تو می بینی که نیکی می کنی بر حیات و راحت بر می زنی. چون که تقصیر و فساد می آن حیات و زعق پنهان می شود دید خود مگذار از دید خسان که به مردارت کشند این کرکسان چشم چون نرگس فرو بندی که چی، هین اسایم کش که کورم ای اچی؟ وان اصا که گزیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر. دست کورانه به حبل الله زن، جز بر امر و نهی یزدانی متن، چیست الله رها کردن هوا کین هوا شد سرسر مرآد را خلق در زندان نشسته از هواست مرغ را پرها ببسته از هواست ماهی اندر تابه گرم از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست چشم شهنه شعله نار از هواست چارمیخ و حیبت دار از هواست شهنه اجسام دیدی بر زمین شهنه احکام جان را هم ببین روح را در غیب خود اشکنجه هاست. لیک تا نجهی شکنجه در خفاست چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار زان که زد از زد گردد آشکار آنکه در چه زاد و در آب سیاه او چه داند لطف دشت و رنج چاه چون رها کردی هوا از بیم حق در رسد سغراق از تسنیم حق لا تو ترق فی هوا سلسبیل من جناب الله نحو السلسبیل لا تکن تا الهوا مثل الهشیش، این زل عرش اولا من عریش. گفت سلطان اسب را با برید، زود زین این مزلمه بازم خرید با دل خود شه نفرمود این قدر، شیر را مفریب زین رسل بقر پای گاو اندر میان آری زداو راو ندوزد حق برسب شاخ گاو بس مناسب صنعت است این شهره زاو کی نهد بر جسم اسب او عضو گاو زاو عبدان را مناسب ساخته قصرهای منتقل پرداخته در میان قصرها تخریجها از سوی این سوی آن سهریجها وزدرون شان عالم بی منتها در میان خرگه، چندین فضا گه کابوس نماید ماه را گه نماید روزه قعر چاه را قبض و بست چشم دل از زلجلال دم بدم چون می کند حلال زین سبب درخواست از حق مصطفى زشت را هم زشت و حق را حق نما تا به آخر چون بگردانی ورق از به نیفتم در قلق مکر که کرد آن اماد ملک فرد مال ملکش بدان ارشاد کرد مکر حق سرچشمه این مکر هاست، قلب بین اسبعین کبری کبریاست، آن که سازد در دلت مکر قیاس، آتش داند زدن اندر پلاس. روجو کردن به قصه آن پایمرد و آن غریب وامدار و بازگشتن ایشان از سر گور خاجه و خواب دیدن پایمرد خاجه را علی آخر به نهایت آمدین خوش سرگذشت چون غریب از گور خاجه بازگشت، پای مردش سوی خانه خیش برد. مهر صد دینار را با او سپرد. لوتش آورد و حکایت هاش گفت. که از امید اندر دلش صد گل شگفت. آنچه بعد الاسر یسر او دیده بود، با غریب از قصه آن لب گشود. نیم شب بگذشت و افسانه کنان خوابشان انداخت تا مرآی جان. دید پامرد آن همایون خاجه را. اندران شب خواب بر صدر سرا. خاجه گفت ای پای مرد با نمک نمک آنچه گفتی من شنیدم یک به یک. لیک پاسخ دادنم فرمان نبود. به اشارت لب نیارستم گشود ما چو واقف گشته ایم از چون و چند مار بر لب های ما بنهادند. تا نگردد رازهای غیب فاش تا نگردد منحدم عیش و معاش تا ندرد پرده غفلت تمام تا نماند دیگه مهنت نیم خام ما همه گوشیم کار شد نقش گوش ما همه نطقیم لیکن لب خموش هرچه ما دادیم دیدیم این زمان این جهان پردست و این است آن جهان روز کشتن روز پنهان کردن است توخم در خاک پرایشان کردن است، وقت بدرودن گه منجل زدن، روز پاداش آمد و پیدا شدن، های مصنوی معنوی مولوی را مین وکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردهاند